بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم وحشرنا عليهم كل شيء و اگر ما كانوا ليؤمنوا يشاء فرشتگان را برانها آنها می کردیم و مردگان با آنها سخن میگفتند و همه چیز را در برابرشان گرد میآوردیم، هرگز ایمان نمیآورند مگر آنکه خدا بخواهد ولی بیشترشان نمیدانند. دانند وكذالك جعلنا لكل نبی عدوا من شياطين الانس والجن یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء رب ما فعلوه فذرهم و ما یفترون و این برای هر پیام دشمنی از شیاطین انس و جن قرار دادیم. سخنان فریبنده و بی اساس به یکدیگر القا کردند و اگر پروردگارت میخواست چنین نمیکردند، پس آنها را با تهمت و دروغهایشان واگذار. و لتصرا الیه افیده الذین لا یؤمنون بالاخره ولیرضوا ولیقترفوا و اقترفو ما هم مقترفون و تا دلهای کسانی که به آخرت ایمان ندارند به آن متمایل گردد و به آن خوشنود شوند، و هر گناهی که بخواهند انجام دهند افغیر الله ابتغی حکما و هو ای اليك الكتاب يعلمون منزل من ربك بالحق فلا تكونن من بگو آيا غير خدا را بداوری طلب كنم و حال آنکه او کسی است که این کتاب روشن به سوی شما نازل کرده است و کسانی که به آنها کتاب آسمانی داده ایم می که این قرآن به حق از سوی پروردگارت نازل شده است بنابراین هرگز از تردید کنندگان مباش و تمت کلمت ربی صدقا و عدلا لا مبدل و, و کلام پروردگار تو با صدق و عدل به انجام رسید هیچ کس نمی تواند کلمات او را دیگر گون سازد و او شنوای داناست وَإِن تطع أَكْثَرَ من فِي الأرض يضلوك عن سَبِيلِ الله. إِن يتبعون إلا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إلا يَخْرُصُونَ و اگر از بیشتر کسانی که در روی زمین هستند اطاعت کنی تو را از راه خدا گمراه می کنند زیرا آنها جز از گمان پیروی نمی کنند و جز به دروغ سخن نمی گویند این ربکه هو اعلم من یضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین پروردگارت به کسانی که از راه او گمراه میشوند آگاه تر است و او به هدایت یافتگان نیز آگاه تر است و قولوا ذکر اسم الله علیه ان كنتم پس اگر به آیات او ایمان دارید از آنچه نام خدا بر آن برده شده بخورید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 بی غیر علم و اعلم و چرا از چیزهایی که هنگام زب نام خدا بر آن برده شده نمی خورید حال آنکه خداوند آنچه را بر شما حرام کرده به روشنی بیان نموده است مگر این ناچار باشید و همانا بسیاری از مردم به خاطر هوا و هوس و بیدانشی دیگران را گمراه می کنند بیگمان پروردگارت به حال تجاوزکاران داناتر است و ظاهر الاثم و إن این الذین یکسبون الاسم سیجزون بما كانوا یقترفون و گناه آشکار و پنهان را رها کنید همانا آنان که مرتکب گناه میشوند به زودی در برابر آنچه چه مرتکب میشوند مجازات خواهند شد ولا تاکلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفي وَإِنَّ الشیاطین لیوحون إلى أولیائهم لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ و از آنچه هنگام زبه نام خدا بر آن برده نشده نخورید و همانا این عمل نافرمانی و گناه است و به راستی شیاطین به دوستان خود القامی کنند تا با شما مجادله کنند و اگر از آنها اطاعت کنید بیگمان مشک خواهید بود اومن که میتا فأحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس کمن کَمَن مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ دَيْنَا لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ آیا کسی که با کفر مرده بود پس با هدایت او را زنده کردیم و نوری برایش قرار دادیم که با آن در میان مردم راه می‌رود همانند کسی است که در تاریکی ها باشد و از آن خارج نگردد. این چونین برای کافران آنچه که انجام می آراسته شده است. و جعلنا جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ و اینگونه در هر شهر و دیاری بزرگان گناه کارانشان را قرار دادیم تا در آن نیرنگ کنند، ولی نمیدانند دانند که جز با خودشان مکر نمی برزند. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوْتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ عند الله وعذاب و وعذاب شديد بما كانوا يمکرون. و چون نشان ای برای آنها بیاید میگویند ما هرگز ایمان نمی آبریم مگر اینکه همانند آنچه به پیامبران خدا داده شده به ما هم داده شود خداوند آگاهتر است که رسالت خیش را کجا قرار دهد به زودی به کسانی که مرتکب گناه شدند به سزای مکری که می‌بردیدند از جانب خدا خاری و عذاب سختی خواهد رسید تن الله ان اهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك یجعن الله الرجس على الذین لا يؤمنون پس هر کس را که خدا بخواهد هدایت کند سینه اش را برای قبول اسلام می گشاید و هر کس را که بخواهد گمراه کند سینه اش را چنان تنگ می کند که گویا به آسمان بالا میرود. این چون خداوند پلیدی را بر کسانی که ایمان نمی آورند قرار می دهد. و, صراط قد فصلنا و این راه مستقیم پروردگار توست. به تحقیق ما آیات خود را برای گروهی که پند می گیرند بیان کردیم. لهم دار السلام عند ربهم و ولیهم بما کانو یعملون برای آنها در بهشت سرای آرامش و سلامتی نزد پروردگارشان خواهد بود و او ولی و دوستدار آنهاست به خاطر اعمال پسندیده که انجام می دادند.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 وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ و روزی که خداوند همه آنها را گرد آورد و می‌فرماید ای گروه جن شما افراد زیادی از انسانها را گمراه کردی و دوستان آنها از آدمیان می‌گویند پروردگارا هر یک از ما دو گروه از یکدیگر بهره‌مند شدیم و به آن مدتی که برای ما مقرر داشته بودی رسیدیم خداوند می‌فرماید آتش جایگاه شماست جاودانه دارن خواهید ماند مگر آنچه خدا بخواهد بیگمان پروردگار تو حکیم و حکی داناست و کذالک نولی بعض بعضا ظالمین بعضا بی ما یکتبون به این چونین بعضی از ستمگران را به کیفر آنچه انجام می دادند. به بعض دیگر وا می‌گوزاریم یا معشر الجن والانس الم يأتكم رسل منکم یقصون علیکم آیات یقصون و لقاء یومکم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرّتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. أي جروه جنب أنس. آیا پیام برانی از شما به سوی شما نیامدند که آیات مرا برایتان بخوانند و شما را از ملاقات این روزتان هشدار دهند؟ گویند بر خود من گواهی می دهیم و زندگی دنیا آنها را فریب داد و بر زیان خودشان گواهی دهند که کافر بودند. ذلک ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلها این بدان سبب است که پروردگارت هیچگاه شعرها را در حالی که مردمش غافل و بی‌خبر باشند به ستم هلاک نمی‌کند و درجات من ما عملو و ما ربک بغافل عما یعملون و برای هر یک در برابر آنچه انجام داده اند درجاتی است و پروردگارت از آنچه انجام می غافل نیست وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ كَمَا أنشأكم یه و پروردگارت بینیاز و صاحب رحمت بیکران است اگر بخواهد شما را میبرد و پس از شما هر کس را بخواهد جانشین میکند چنان که شما را از نسل گروهی دیگر به وجود آورد اینما عدون لالان و ما انتم آنچه به شما بعد داده می شود خواهد آمد و شما نمی توانید خدا را ناتوان سازید و از کیفر الهی فرار کنید قل یا قوم اعملوا على مکانتكم اینی عامل فسوف تعلمون من تکون له عاقبت الدار اینه لا يفلح الظالمون بگو ای قوم من به شیوه خود عمل کنید همانا من نیز به شیوه خود عمل می کنم. اما به زودی خواهید دانست که چکسی سرانجام نیک خواهد داشت به تحقیق ستمکاران راستگار نخواهند شد وجعلوا لله مما ذرأ من الحرس والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله و ما کان لله فهو يصل الى شرکائهم ساء ما يحكمون. و مشکان از آنچه خداوند از زراعت و چهار پایان آفریده است بهرعی برای او قرار دادند و به گمان خود گفتند این برای خداست و این هم برای شریکان ماست پس آنچه از آن شریکانشان بود به خدا نمی رسید و آنچه از آن خدا بود به شریکانشان می رسید، چه بد حکم میکنند و کذالک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادهم شرکاؤهم لیردوهم ولیلبتو علیهم دینهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما یفترون و, يفترون و این, این شریکانشان برای بسیاری از مشکان کشتن فرزندانشان را آراست جل دادند تا هلاکشان کنند و آینشان را آنان مشتبه سازند و اگر خدا میخواست چون این پس آنها را با تهمتهایشان واگذار و وحرس حجر لا يطعمها إلا من نشاء بدعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سیجزیهم گفتند این چهار پایان و کشت زارها برای همه ممنوع است مگر کسانی که ما بخواهیم به گمان آنان نباید از آن بخورد و چهار پایانی دیگر است که سوار شدن بر پشت آنها حرام است و نیز چهار پایانی دیگر است که هنگام ذبح نام خدا را بر آن نمیبردند و با این کارشان به خدا دروغ میبستند و خداوند به زودی کیفر افتراهایشان را خواهد داد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 حکیم علیم و گفتند آنچه در شکم این چهار پایان است مخصوص مردان ماست و بر همسران من حرام است و اگر مرد باشد پس همگی در آن شریکند به زودی خداوند کیفر این توصیف آنها را می دهد بیگمان او حکیم داناست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 مسلمان زیان کردند آنها که فرزندان خود را به نادانی کشتند و از روی افترا بر خدا بند آنچرا خدا روزیشان نموده بود بر خود تحریم کردند. به تحقیق آنها گمراه شدند و راه هدایت را نیافته بودند. وَهُوََّذِي أَ شَجًاّاتٍ مَعْوشَاتِ وَغَيْرَ نَعْوشاتٍ وَ النَّحلَ وَذر أُكُلُهُ وَذَّتُونَ وَرُّم م نَ مُتَشابِهَ كلوا <تكلم> من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وأوست كه باغهایی دار بست و بیدار بست و درخت خرما و کش زار با میوه‌های گوناگون و زیتون و انار را شبیه و بیشباهت پدید آورد از میوه آن به هنگامی که رسید بخورید و حق آن را در روز دروش بپردازید و اصراف نکنید بیگمان او اصراف کنندگان را دوست ندارد وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَتًا وَفَرْشًا کُلُو مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ وَنیز از شهار پایان حیوانات بار حیوانات کوچک که توان حمل بار ندارند آفرید از آنچه خدا به شما روزی داده است بخورید و از گام های شیطان پیروی مکنید بیگمان او دشمن آشکار شماست و مانیت من الضأن اثنين ومن المعد اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الانسيين أم اشتملت عليه أرحام الانسيين نبی اونی ان كنتم هشت جفت از چهار پایان آفرید از میش یک جفت و از بز یک جفت بگو آیا خداوند دونر را حرام کرده است یا دو ماده را یا آنچه که در رحم های این دو ماده در بردارد اگر راست می از روی علم به من خبر دهید. و من الابل اثنین و من البقر اثنين. قل آذ ذکرین حرم أم الأنثيين ام مشتملت عليه أرحام الأنثيين.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 و از شتور یک جفت و از گاو یک جفت بگو آیا دونر را حرام کرده است یا دو ماده را یا آنچه که در رحمهای این دو ماده در بردارد آیا هنگامی که خداوند شما را به تحریم آن توصیه کرد حاضر و گواه بودید پس چه کسی ستم کار تر است از آن کس که بر خدا دروغ بندد تا مردم را از روی نادانی گمراه سازد مسلما خداوند، گروه ستمکاران را هدایت نمی کند قل لا اجد فی ما اوحی ایلی محرمن على طاعمی طعمه اِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَسْفُوحًا اَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجَسٌ اَوْ فِصَّاً اُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَن يُضْطَرُّ وَغَيْرَ بَاغٍ بگو در آنچه بر من وای شده است چیز حرامی را که خوردن آن بر خورندهای حرام باشد نمیابم به جز اینکه مردار باشد یا خون ریخته شده یا گوشت خوک که پلید است یا حیوانی که در کشتنش نافرمانی خدا شده هنگام ضو نام غیر خدا بر آن برده شده باشد اما کسی که به خوردن آنها ناچار گردد بی آنکه خواهان لذت آن باشد و یا زیاد روی و تجاوز کند گناهی بر بروی نیست بیگمان پروردگارت آمورزنده مهربان است وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ضفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم لذلك جزيناهم و لصادقون و بر یهودیان هر حیوان ناخندار را حرام کردیم و از گاو و گوسفند پیه آن دو را بر آنها حرام ساختیم مگر آنچه که بر پشت آنها قرار دارد و یا در لابلای روده ها یا آنچه به استخوان آمیخته است این را به سبب سرکشی و ستمی که می‌کردند به آنها کیفر دادیم و حقا ما رازگوییم فاین کذبوا کف قربکم ذو رحمت واسعه ولا يرد باسهم عن القوم المجرمین پس اگر تو را تکذیب کنند بگو پروردگار شما دارای رحمتی گسترده است و عذابش از گروه مجرم دف نخواهد شد سیقول الذین أشركوا لو شاء الله ما ولا ولا حر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 زودی کسانی که شرک ورزیدند میگویند اگر خدا میخوااست نما شرک میآوردیم و نه پدران ما و نه چیزی را تحریم میکردیم. کسانی که پیش از آنها بودن نیز این چون این کردند تا آنکه تعم عذاب ما را چشیدند. بگو آیا نزد شما دانشی است که آن را برای ما آشکار سازید؟ شما فقط از پندارهای بی اساس پیروی می‌کنید و شما جز گذافه و دروغ نمیگویید قل فللله الحجت البالغه فلو شاء لهداكم اجمعین بگو دلیل رسا و قاطع از آن خداست پس اگر می‌خواست همه شما را هدایت می‌کرد قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذین كذبوا بآیاتنا والذین لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم یعدلون بگو گواهان خود را که گواهی میدهند که خداوند این را حرام کرده است بیاوری پس اگر آنها به دروغ گواهی دهند تو با آنان گواهی نده و از هوا و هوس کسانی که آیات ما را تگذیب کردند و کسانی که به آخرت ایمان ندارند و بطها را با خداوند برابر و شریک قرار میدهند، پیروی مکن. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا, ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملا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 بگو بیایید آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده است برایتان بخوانم. آنکه چیزی را شریک او قرار ندهید و به پدر و مادر نیکی کنید و فرزندانتان را از بیم فقر نکشید. ما شما و آنها را روزی می و به کارهای زشت و ناشایست آنچه آشکار باشد یا پنهان نزدیک نشوید. و را که خداوند کشتنش را حرام کرده است جز به حق نکشید این چیزی است که خداوند شما را به آن سفارش نموده است باشد که خرد ورزید ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده وأوفوا الكيل والميذان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون و به مال یتیم نزدیک نشوید مگر به کوترین وجهی که برای اصلاح باشد تا به سن رشد خود برسد و حق پیمان و وزن را به ادالت ادا کنید ما هیچ کس را جز به اندازه توانش تکلیف نمی کنید. و هرگاه سخنگویید یاداوری کنید و یا شهادت می دهید. پس ادالت را رعایت کنید حتی اگر در مورد نزدیکان شما بوده باشد و به عهد و پیمان خدا وفا کنید این چیزی است که خداوند شما را به آن سفارش نموده است تا متذکر شوید. و ان مهد افراطی مستقیمن فتبع مولا تتبع السم فتفرواقبكم مع سبیلی ذكم واففكم بلهعلكم تتقون و این راه مستقیم من است پس از آن پیروی کنید و از راه های پراکنده پیوی نکنید که شما را از راه خدا دور میکند. این چیزی است که خداوند شما را به آن سفارش نموده است شاید کار شوید ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمه لعلهم سپس به موسی کتاب آسمانی دادیم تا نعمت خود را بر کسی که نیکوکار بود تمام و کامل کنیم و همه چیز را به تفصیل بیان کردیم و آن را مایه هدایت و رحمت قرار دادیم شاید به لقای پروردگارشان ایمان بیاورند و هذا کتاب انزلناه مبارک فاتبعوه واتقو لعلكم ترحمون به این قرآن کتابی پر پربرکت که ما نازل کردیم از آن پیروی کنید و پرهیزگار باشید تا مورد رحمت قرار گیرید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 تا نگویید کتاب آسمانی تنها بر دو تایف پیش از ما نازل شده بود و ما از خواندن و آموختن آنها بیخبر بودیم او تقول لو اننا انزل علینا الكتاب لكنا اهدا منهم فقد جاءكم بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا فَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِ نَاسُوءَ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ یا بگویید اگر کتاب آسمانی بر ما نازل میشد، از آنها راه یافته تر بودین از جانب پروردگارتان دلیل روشن و هدایت و رحمت برای شما آمده است پس چه کسی ستم کار تر است از کسی که آیات خدا را تقذیب کند و از آن روی گرداند به زودی کسانی را که از آیات ما روی می به عذابی سخت مجازات خواهیم داد هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إِنَّمَا مُنْتَظِرُونَ آیا انتظاری جز آن دارند که فرشتگان مرگ نزدشان بیایند یا پروردگارت خودش به سوی آنها بیاید یا بعضی از آیات پروردگارت بیاید روزی که بعضی از آیات پروردگارت بیاید ایمان آوردن افرادی که قبلا ایمان نیاورده اند یا در ایمانشان عمل نیکی انجام نداده اند سودی به حال آنها نخواهد داشت بگو منتظر باشید بیگمان ما نیز منتظر خواهیم بود. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيع لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم كانوا براستی کسانی که آین خود را پراکنده ساختند و دست دست شدند تو را با آنان هیچ گونه کاری نیست کار آنها تنها با خداست سپس آنها را از آنچه انجام میدادند آگاه می سازد. من جاء فله عشر ومن جاء فلا يجزا إلا مثلها لا يظلمون روز قيامت هر كار نيكي پس ده برابر آن پاداش دارد و هرکس کار بدی آورد جز بمانند آن کیفر نخواهد دید و بر آنها ستمی نخواهد شد قل این ربی الى اشتقی من دینم قیمن ملت ابراهیم حنیفه و ما کان من المشرکیم. بگو به تحقیق پروردگارم مرا به راه راست هدایت کرده است دین درست و پابرجا دین حنیف ابراهیم حق پر است که از مشکان نبود قل ان صلاتی و نسکی و و لله رب العالمين. بگو بیگمان نمازم و عبادت و قربانی من و زندگی و مرگ من همه برای خداوند پروردگار جهانیان است لا شریک له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمین شریكی برای او نیست و به این مأمور شدهم و من نخستین مسلمانم قل أغیر الله أبغی ربا وهو رب كل شیء وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً إِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَأْخَذْتَ لَهُنَّ آیا غیر خدا پروردگاری را به جویم در حالی که او پروردگار همه چیز است؟ و هیچ کس گناهی مرتکب نمی شود مگر آنکه به زیان خود اوست و هیچ گناه بار گناه دیگری را به دوش نمی گیرد سپس بازگشت همه شما به سوی پروردگارتان است پس شما را از آنچه در آن اختلاف داشتید آگاه می کند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 و او کسیست که شما را جانشینان در زمین قرار داد و درجات بعضی از شما را نسبت به بعضی دیگر برتری داد تا شما را به وسیله آنچه که به شما داده است بیازماید. مسلما پروردگار تو زود کیفر است و همان او آمرزندی مهربان است. بسم الله الرحمن الرحيم ا ل م م ص ا ل ف کتابی انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذکر للمؤمنین این کتابی است که بر تو نازل شده است پس نباید در سینه‌ات از آن تنگی باشد تا آن مردم را بیم دهی و برای مؤمنان پند و تذکری باشد اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون آنچه از جانب پروردگارتان بر شما نازل شده پیروی کنید و از اولیا و معبودهای دیگر جز او پیروی نکنید چه اندک پند میپذیرید و کم من قریت اهلکناها فجاءها بأسنا بیاتا او هم قائلون چه بسیار شهرها و آبادیها که آنها را نابود کردیم و عذاب ما به هنگام شب یا در هنگام خواب نیم روز به سراغشان آمد فما كان دعواهم اذ جاءهم باسنا الا ان الا چون عذاب ما به سراغ آنها آمد سخنی نداشتند جز این که گفتند بیگمان ما ستمکار بودیم مسلمان ما از کسانی که پیام بران به سوی آنها فرستاده شدند سؤال خواهیم کرد و البته از پیام برانی سوال میکنیم فلا ن بعلم وما كنا ومکن یقینا کردارشان را با علم خود برایشان بیان میکنیم و ما هرگز غایب نبوده ایم. والوزن يومئذ للحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون وزن وسنجش اعمال در آن روز حق است پس کسانی که کف ترازویشان سنگین است پس آنانند که راستگارند و من خفّت موازیمه فاؤلائک الذين خسرو أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. و کسانی که کفی ترازویشان سبک است. آنان کسانی هستند که به خاطر انکار و ستمی که نسبت به آیات ما میکردند به خیش زیان رساندند. و لقد مکنناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها ما تشکرون. و به راستی ما شما را در زمین اقتدار دادیم در آن وسایل معیشت را برای شما قرار دادیم چندک شکر گذاری می کنید و لقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدو فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِي سَلَمْ يَكُمْ مِنَ السَّجِدِينَ و به تحقیق ما شما را آفریدیم، آنگاه شما را شکل و صورت دادیم، سپس به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده کنید، پس همه سجده کردند جز ابلیس که از سجده کنندگان نبود، قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين خداوند فرمود وقتی که تو را فرمان دادم چه چیز مانع سجده کردنت شد ابلیس گفت من از او بهترم مرا از آتش آفریده‌ای و او را از گل قال فبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فخرج انك من الطاغين فرمود از آن بهشت فرو دای که حق تو نیست که در آن تکبر ورزی پس بیرون رو بیشک تو از خار شدگانی قال انظرنی الى یومی یبعثون ابلیس گفت تا روزی که مردم برانگیخته میشوند مرا مهلت ده قال انک من المنظرین خداوند فرمود مسلما تو از مهلت یافتگانی قال فبما أغويتني لأقعدن لهم مستقیم. ابلیس گفت پس به سبب آنکه مرا گمراه کردی من نیز بر سر راه مستقیم تو برای گمراه ساختن آنها در کمین می نشینم دم لآتین هم من بين وَمِنْ ومن من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. سپس از رویشان و از پشت سرشان و از سمت راستشان و از سمت چپشان بر آنها میتازم و بیشترشان را شکرگزار نخواهی یافت قال اخرج منها مذوما مدحورا لمن تبعك منهم لامل ان جهنم منكم اجمعی خداوند فرمود از آن نکوهید و خار بیرون رو قطعا هر کس از آنها از تو پیروی کند جهنم را از شما همگی پرخواهم کرد و یا آدم اسکن انت و دوج کل فکلا من حیث شئتما ولا تقربا ولا تَقَرَبَ هذه شَجَرَتَ فتكون من الظَّالِمِينَ به ای آدم تو و همسرت در بهش ساکن شوید پس از هر جا که خواستید بخورید و به این درخت نزدیک نشوید که از ستمکاران خواهید بود فَوَسَوَّا لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبَدِّي لَهُمَا مَا مَا وُرِي عَنْهُمَا مِنْ ثُوَأَتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْهَاذِهِ الشَّجَرَةِ إلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينِ پس شیطان آن دو را وسوسه کرد تا آنچرا از شرمگاهشان که از آنها پوشیده بود در نظرشان آشکار سازد و گفت پروردگارتان شما را از این درخت نهی نکرده است مگر به خاطر اینکه مبادا با خوردن آن فرشته شوید یا از جاودانان گردید و قاسما و برای آن دو سوگند یاد کرد که من برای شما از خیر خواهانم فدلاهما بغروب فلما داق الشجرة بدت لهما توآتهما وطفقا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 پس به این ترتیب آنها را با فریب از مقام و منزلشان فرود آورد و چون از آن درخت چشیدند شرمگاهشان بر آنها آشکار شد و شروع کردند به قرار دادن برگ درختان بهشت بر خود تا آن را بپوشانند و پروردگارشان آنها را نداداد آیا شما را از آن درخت من نکردم و به شما نگفته بودم که شیطان دشمن آشکار شماست؟ و لم لنا و من آن دو گفتند پروردگارا ما به خود ستم کردیم و اگر ما را نیامرزی و بر ما رحم نکنی مسلما از یانکاران خواهیم بود قال لبعض ولكم مستقر ومتاع خداوند فرمود فرودایید در حالی که بعضی از شما نسبت به بعضی دیگر دشمن خواهید بود و برای شما در زمین تا مدت معینی قرارگاه و بهره مندی خواهد بود قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون فرمود در آن زندگی میکنید و در آن میمیرید و در رستاخیز از آن بیرون آورده خواهید شد یا بنی آدم قد ان ای عَلَيْكُمْ لِبَاسًا فرزندان آدم به برای شما لباسی که شرمگاهتان را میپوشاند و مایه زینت شماست نازل کردیم، و لباس تقبا بهتر است این از آیات و نشانهای خداوند است تا انسانها متذکر شوند یا بنی آدم لا اینکم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم اننا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون ای فرزندان آدم شیطان شما را نفری بد چنانکه پدر و مادر شما را از بهشت بیرون کرد و لباسشان را از تنشان کند تا شرمگاهشان را به آنها نشان دهد بی گمان او و همکارانش شما را می بینند از جایی که شما آنها را نمی بینید به راستی ما شیطانها را دوستان کسانی قرار دادیم که ایمان نمی آورند و اذا فعلوا فاحشتا قالوا وجدنا علیها آبانا والله أمرنا به قل ان الله لا يأمر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون و چون کار زشتی انجام دهند گویند نیاکان خود را بر این کار یافت این و خداوند ما را بدان فرمان داده است بگو خداوند هرگز به کار زشت فرمان نمیدهد آیا چیزی را که نمیدانید به خدا نسبت می دهید قل امر ربی بالقسط واقيم وجوهكم عند كل مسجد ودعووه مخلصین له الدين كما بدأكم تعودون بگو پروردگارم به ادالت فرمان داده است و نیز در هر مسجدی و به هنگام هر نمازی رویهایتان را به سوی او کنید و او را به دعا و نیایش بخوانید. در حالی که دین خود را برای او خالص کردانید همانطور که در آغاز شما را آفرید بعد از مرگ بار دیگر به سویش باز میگردید فرق هدا و فرق حق عليهم الضلاله. اِنَّهُمْ اَتَخَذُ الشَّيَاطِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ گروهی را هدایت نمود و گروهی دیگر گمراهی آنها محقق و ثابت گشت زیرا آنها شیطانها را به جای خداوند سرپرست و دوستان خیش برگزیدند و گمان میکنند که آنان هدایت یافتهند یا <تصفيق> بنی دمخدو زینت ك د كل مسجد و و كلو وشاب ولا تصریفوِ لا يحب المصف فرزندان آدم به هنگام رفتن به مسجد و در هر نمازی زینت خود را برگیرید. و بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید بی گمان خداوند اصرافکاران را دوست نمی دارد قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِطَتَ يَوْمَ الْقِیَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ يَعْلَمُونَ بگو چه کسی لباس و زینتهایی را که خدا برای بندگانش پدید آورده؟ و روزی های پاکیزه را حرام کرده است بگو این چیزها در زندگی دنیا برای کسانی است که ایمان آورده اند اگر چه کافران نیز از آنها بهرهمند میشوند اما روز قیامت خاص برای مؤمنان خواهد بود این چون این آیات خود را برای گروهی می‌دانند به یاد می‌کنی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 و ان تقولوا على الله ما لا تعلمون. بگو خداوند فقط کارهای زشت را چه آشکارا باشد و چه پنهان و نیز گناه و سرکشی به را حرام کرده است و اینکه چیزی را شریک خدا قرار دهید که خداوند دلیلی بر حقانیت آن نازل نکرده است و چیزی را که نمیدانید به خدا نسبت دهید حرام نموده است و لیکل امت اجل فا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعتمون ولا يستقدمون و برای هر امتی زمان و مدت معینی است پس هنگامی که اجلشان فرار سد نه لحظه ای از آن تأخیر کنند و نه بر آن پیشی گیرند یا بنی آدم اما یأفینکم رسل من ای فرزندان آدم هرگاه پیام برانی از خود شما به نزد شما بیایند که آیات مرا برای شما بخوانند، از آنها پیروی کنید پس هر کس که پرهیزگاری کند و اعمال خود را اصلاح کند، نه ترسی برانهاست و نه آنان اندوه گین شوند. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِي آیَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّاسِ هم فيها خالدون و کسانی که آیات ما را تکذیب کنند و در برابر آن تکبر ورزند آنان اهل دوزخند جاودانه در آن خواهند ماند فمن اظلم ممن من افترا على الله كذبا او كذب باياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا, قالوا اينما كنتم تدعون من دون قالوا ضلوا عنا وشهدوا عَلَىٰ اَنفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كانوا كَافِرِينَ پس چه کسی ستم کار ترست از کسی که بر خدا دروغ میبندد یا آیات او را تقضیب می کند آنها نصیب و بحریشان از کتاب به آنان می رسد تا زمانی که فرستادگان ما به سراغشان روند که جانشان را بگیرند، گویند کجایند آن چیزهایی که به جای خدا می آنها گویند آنها نابود و گم شدند و بر زیان خود گواهی دهند که کافر بودند قالد فی همین‌قدر که دخالت کردند، از قبل از شما جن و انسان در نارگ، حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخرهم لأولاهم ربنا ما أولئئ اضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار خداوند به آنان میفرماید در بین گروههایی از جن و انس که پیش از شما گذشته اند در آتش دوزخ وارد شوید هرگاه که گروهی وارد می شوند گروه دیگر را لعنت کنند تا هنگامی که همگی در آنجا به هم رسند گروه آخر به پیروان دربار گروه اول و پیشوایان خود گویند پرورگارا اینها بودند که ما را گمراه کردند پس عذابی دچندان از آتش به آنان بده خداوند میفرماید برای هر کدام از شما عذاب دچندان است ولی شما نمیدانید. و قالت اولاهم لأخراهم فما كان لکم علینا من فضل فذوق العذاب بما کنتم تكسبون. و گروه اول و پیشوایانشان به گروه آخر و پیروانشان گویند شما را بر ما هیچ برتری نیست پس به کیفر آنچه انجام میدادید عذاب را بچشید این الذين كذبوا و واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء لا تُفَتَّحُ لهم أَبْغَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجِزِ الْمُجْرِمِينَ بی گمان کسانی که آیات ما را تجزید کردند و در برابر آن گردن کشی و تکبر ورزیدند درهای آسمان هرگز برایشان گشوده نمی شود و به بهش داخل نخواهند شد مگر اینکه شطور از سوراخ سوزند راید و این چون این گناه کاران را کیفر می لهم من جهنم مهاد و من فوقهم غواش وكذلك نجدی الظالمین برای آنها بستری از آتش جهنم و نیز روی آنها پوشش هایی از آتش جهنم است و این چونین ستمکاران را کیفر می دهین و الذین آمنوا و الصالحات لا نکلف نفساً إلا وسعها لا نكلف نفسا الا وسعها اولئك اصحاب الجنه اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون وكساني که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند هیچ کس را جز به اندازه توانش تکلیف نمی کنیم. آنها اهل بهشت هستند و جاودان آن خواهند ماند و ما فی صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار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 و نودو ان تلکم الجنت اورستموها بما کنتم تعملون و آنچه از کینه که در سینه های شان است برمی و زیر درختان و های آنها نرها جاری است و گویند ستایش مخصوص است که ما را به این بهشت هدایت نمود و اگر خداوند ما را هدایت نمی کرد ما هرگز راه نمی آفتیم و فرستادگان پروردگار ما به حق آمدند و آنگاه به آنان ندا داده شود که این بهشت را به پاداش آنچه که انجام می دادید به شما داده اند و عرض بردید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 فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَلَّعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ و اهل بهشت اهل دوزخ را صدا میزنند که آنچرا که پروردگار به ما وعده داده بود همه را حق یافتیم پس آیا شما نیز آنچرا پروردگارتان به شما وعده داده بود حق یافتید؟ گویند آری پس ندا ای در میان آنها ندادهد که لعنت خدا بر ستمکاران باد الذین یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا وهم بالآخرة همان کسانی که مردم را از راه خدا باز می و آن را کج می و نیز آنها به آخرت کافر بودند و بینهما حجاب و علی الارراف نجالون یعرفون کلا بسیماهم حاب جنتی ان سلام علیکم لم يدخلوها وهم یطمعون و در میان آن دو گروه بهشتی و دوزخی حجابی است و بر اعراف مردانی هستند که هر یک از آن دو گروه را از سیما و چهرهشان میشناسند و اهل بهشت را صدا میزنند که سلام بر شما باد اینان هرچند تمع بهش دارند و هنوز بدان در نیامده اند و اذا خرفت ابطارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. چون چشمشان به سوی اهل دوزخ گردانده شود گویند پروردگارا ما را با گروه ستمگران قرار مده و نادا اصحاب الاحراف رجالا یعرفونهم بسیماهم قالوا ما ارناعنكم جمعكم قالو ما عنكم جمعكم و, ما كنتم و اهل عرااف مردانی از اهل دو زخرا که از سیما و چهرهشان آنها را میشناسند صدا میزنند گویند جمعیت و مال اندوزی شما و آن و تکبرهای شما به حالتان تانفاید ای نبخشید. أهؤلاء الذین أقسمتم لا آیا اینها همان کسانی هستند كه سوگند یاد کردید؟ که هرگز خداوند رحمتی به آنها نمیرساند، به آنها گفته می شود به بهشت داخل شوید نه ترسی بر شماست و نه شما اندوه گین می شوید و نادا اصحاب النار اصحاب الجنة ان افیضو علينا من ان افيد علينا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين اهل دوزخ اهل بهشت را صدا ميزنند كه اندكي از آب یا از آنچه خداوند به شما روزی داده بر ما بریزید آنها گویند بیگمان خداوند هر دورا بر کافران حرام کرده است الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهُوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَهُمْ كَمَانَتُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا و بِي آیَاتِ نَا يَجَحَدُونَ آنان که دین خود را سرگرمی و بازی چه گرفتند و زندگی دنیا آنها را فریفت پس امروز ما آنها را فراموش میکنیم همانطور که آنها دیدار چون این روزی را فراموش اند و آنکه آیات ما را این کار می کردن و لقد جئناهم بکتاب فصلناه على علم هدن و رحمة لقوم يؤمنون و به تحقیق ما کتابی برای آنها آوردیم که آن را از روی دانش به تفصیل بیان کردیم که مایه هدایت و رحمت برای است که ایمان می آورند هل ینظرون الا تأویله یوم یأتی تأویله یقول الذین نسوه من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 قد خسرو انفسهم و عنهم ما كانوا يفترون. آیا آنها جز انتظار تأویلش را دارند روزی که تعویلش فرارسد رسد کسانی که آن را پیش از این فراموش کرده بودند میگویند مسلما فرستادگان پروردگار من به حق آمده بودند پس آیا امروز برای ما شفیعانی هستند که برای ما شفاعت کنند یا بازگردیم آنگاه اعمالی غیر از آنچه میکردیم انجام دهیم؟ به تحقیق آنها به خود زیان رسانیدند و معبود هایی ساختگی و آنچه دروغ میبافتند همگی از نظر آنان ناپدید و گم شد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 ثم استوى على العرش يغش ليلاً نهار يطلبه حسيس والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين أي hey, مردم بیگمان پروردگار شما الله است که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید سپس بر عرش مستقر شد شب را به روز میپوشاند که شتابان در پی آن میرود و خورشید و ماه و ستارگان را آفرید که مسخر فرمان او هستند آگاه باشید که آفرینش و فرمانروایی از آن اوست پر برکت است خداوندی که پروردگار جهانیان است ادعو ربکم تضرعا و انه اینه لا یحب المعتدیم. پروردگارتان را با تضرع و زاری و در پنهانی بخوانید، همانا او از حد در گذرندگان را دوست نمی دارد. ولا تفسدوا في الأرض بعد اصلاحها ودعوه خوفا وطمعا ان رحمت الله قريب من المحسنين و در زمین پس از اصلاح آن فساد نکنید و او را بابی و امید بخانید همانا رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است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 فانزلنا به الماء فافرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون و او كسيست که بادها را بشارت دهنده در پیشاپیش باران رحمتش میفرستد تا هنگامی که عبرهای سنگین بار را بردارند، ما آن را به سوی شهر و سرزمینی مرد میفرستیم سپس از آن آب را نازل می کنیم، آنگاه از آن آب از هر گونه میوه ای از دل خاک بیرون می آوریم، این گونه مردگان را زنده می کنیم و از قبرها بیرون می آوریم. شاید پند گیرید. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا كذلك نصرف الايات لقوم يشكون سرزمین پاکیزگی‌هاش به فرمان پروردگارش میروید و سرزبین ناپاک جز اندک و ارزش از آن نمی روید این گونه آیات خود را برای گروهی که سپاس می گوناگون بیان می کنیم. لقد ارسلنا نوحاً الى قومه فقال يا قوم اعبد الله ما لکن من اله غیر فقال یا قوم اعبدالله ما لکم من اله غیره اینی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم همانا ما را به سوی قومش فرستادیم پس گفت ای قوم من خدا را بپرستید که جز او معبودی راستین برای شما نیست بیگمان من بر شما از عذاب روزی بزرگ میترسم قال الملأ من قومه إن ما ضلال مبین. اشراف و بزرگان قومش گفتند به ما تو را در گمراهی آشکار میبینیم قال يا قوم ليس بضلاله ولكنني رسول من رب العالمين گفت اي قوم من کیج گمراهی در من نیست بلکه من فرستاده ای از جانب پروردگار جهانیان هستم ربی و ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون ایام های پروردگارم را به شما میرسانم و شما را اندرزمیدهم و از شریعت خداوند چیزهایی میدانم که شما نمیدانید او عجبتم ان نجاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم لينذركم ولتتقوا ولعلكم تفهمون آيات اعجب كردید که پندی از سوی پروردگارتان بر زبان مردی از خود شما برای شما برسد تا شما را بیم دهد و تا پرهیزگاری پیش کنید و باشد که مشمول رحمت گردید فکذبوه فانجیناه والذین معه فی الفلک و الذین کذبو بآیاتنا آیاتنا اینهم قوما قوم پس او را تکذیب کردند آنگاه ما او و کسانی را که وی در کشتی بودند نجات دادیم و کسانی که آیات ما را تکذیب کردند غرق کردیم به راستی آنها گروهی نابینا بودند و الی عاد اخاهم هودا. قال یا قوم اعبدالله ما لكم. و به سوی قوم عاد برادرشان هود را فرستادیم گفت ای قوم من خدا را پرستش کنید که جز او معبودی راستین برای شما نیست آیا پرهیزگاری پیش نمی‌کنید؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه اننا لنراك في سفهه اننا لنراك في لنظنك من الكاذبين اشراف و بزرگان قوم او که کافر بودند گفتند بیگمان گمان ما تو را در سفاحت می‌بینیم و ما مسلماً تو را از دروغگویان نمی‌پنداریم قال يا قوم ليس بسفاهه ولكنني رسول من رب العالمين. گفت ای قوم من هیچ گونه سفاحت و نادانی در من نیست بلکه من فرستاده ای از جانب پروردگار جهانیان هستم. ربی و انا ناصح امین. پیام های پروردگارم را به شما میرسانم و من خیرخواه امینی برای شما هستم. او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بطه فذکرو آلاء الله لعلكم آیا تعجب کرده اید که پندی از سوی پروردگارتان بر زبان مردی از خود شما برای شما برسد تا شما را بیندهد و به یاد آورید هنگامی که پس از قوم نوح شما را جان شینان آنان قرار داد و شما را در آفرینش فزونی داد پس نعمت های خدا را بی آورید شاید رستگار شوید قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد اباؤنا فأتنا بما تعدنا گفتند آیا به نزد ما آمده ای که تنها خدا را عبادت کنیم و آنچه را من می دهند رها کنیم پس اگر از راست گویان هستی آنچرا از عذاب الهی به ما بعد می دهی بیاور قال قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ من ربكم رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا ۖ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ الله بها من سلطان معكم من هود گفت به تحقیق عذاب و غضب از جانب پروردگارتان بر شما واقع شده و شما را فرا گرفته است آیا با من در باری نامهایی مجادل می کنید که شما و نیاکانتان بر بطهانها دیید؟ در حالی که خداوند هیچ دلیل و برهانی در باری آن نازل نکرده است؟ پس شما منتظر باشید، بیگمان من نیز با شما از منتظرانم فَأَنْ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَتِم و قطعنا دابرالذین کذبو بی آیاتنا و ما کانو مؤمنین پس او و کسانی را که با او بودند به رحمت و لطفی از سوی خیش نجات دادیم پریشه‌ی کسانی که آیات ما را تکذیب کردند و از مؤمنان نبودند، قطع کردیم. و الی ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره قد جاءتكم بینه من ربکم هذه نَاقَةُ الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء وَلَا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم و به سوی قوم سمود برادرشان صالح را فرستادیم گفت ای قوم من خدا را بپرستید که جز او معبودی راستین برای شما نیست همانا دلیل روشنی از سوی پروردگارتان برای شما آمده است این ماده شطور خدا برای شما معجزه است. پس او را به حال خود واگذارید که در زمین خدا بچرد و علف بخورد و آن را آزار و آسیبی نرسانید که عذاب دردناکی شما را خواهد گرفت و اذکرو اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد و بوه فی الارض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 و به یاد آورید هنگامی که شما را پس از قوم آد جانشینان آنان قرار داد و در زمین مستقر ساخت که در دشتهای آن قصرهایی بنا می کنید و در کوه‌ها خانههایی می‌تراشید، پس نعمتهای خدا را به یاد آورید و در زمین به فساد و تباهی نکوشید قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن امن منهم أتعلمون اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه قالوا إن اشراف و بزرگان از قوم او که گردن کشی می کردند به مستضعفان به همان کسانی از آنان که ایمان آورده بودند گفتند آیا شما به راستی یقین دارید که صالح از طرف پروردگارش فرستاده شده است آنها گفتند ما به آنچه او بدان پرستاده شده ایمان داریم قال الَّذِي نَفْتَكْبَرُوا آنان که گردن کشی می کردند گفتند ما به آنچه شما به آن ایمان آورده اید منکر و کافرین فعقرنا فتقواعه عن امر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا وقالوا يا صالح اتنا بما تعدنا كنت من المرسلين پس ماده شتر را پی کردند و از فرمان پروردگارشان سرباز زدند و گفتند ای صالح اگر تو از پیامبران خدا هستی آن را به ما وعده میدهی بیاور فا اخذت ومر وجفته فاصبحوا فا فی دارهم جاثمین آنگاه زلزله ای آنها را فرا گرفت در نتیجه در خانه های خود از پای درآمدند فَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاسِحِينَ پس صالح از آنها روی گردانید من پیام پروردگارم را به شما رساندم و برای شما خیر خواهی کردم ولی شما خیرخواهان را دوست نمی دارید. و لوطاً اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين و به یاد آورید لوت را هنگامی که به قوم خود گفت آیا کار بسیار زشتی را انجام می دهید که پیش از شما هیچیک از جهانیان انجام نداده است اینکم لتأتون الرجال شهوتا من دون النساء بل انتم قوم مسرفون همانا شما به جای زنان با مردان شهفت میرانید. به راستی که شما قومی تجاوزکار هستید و ما کان جواب و پاسخ قومش جز این نبود که گفتند اینها را از شهر و دیارتان بیرون کنید که اینها مردمی هستند که پاکیزگی میطلبند. فان جینا هو واهله الا امراته كانت من الغابرين. پس ما او و خاندانش را نجات دادیم جز همسرش که از بازماندگان بود و امطرنا عليهم مطرا فانظر کیف كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ و بارانی از سنگ برانها بارانی دیم که آنها را نابود ساخت پس بینگر که سرانجام گناه کاران چگونه بود وَإِلَى ایلا مدین اقاهم شعیبا قال یا قوم اعبدالله ما لكم. من إله غيره قد جاءتكم بینة من ربكم فأوفوا الكيل والمیذان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إنكم و به سوی مردم مدین برادرشان شعیب را فرستادیم گفت ای قوم من خدا را بپرستید که جز او معبودی راستین برای شما نیست مسلما دلیل روشنی از طرف پروردگارتان برای شما آمده است پس حق پیمان و ترازو را کامل و درست ادا کنید و از اموال و چیزهای مردم را چیزی نکاهید و در زمین پس از اصلاحش فساد نکنید اگر ایمان دارید این برای شما بهتر است ولا تقعدوا بكل صراط توعدون و تصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا و اذ كنتم قلیلا فکسرکم و انبرو کیف کان عاقبت المفسدین و بر سر هر راهی ننشینید که مردم را تهدید کنید و از راه خدا کسی را که به او ایمان آورده است باز دارید و آن را کج می خواهید و بیاد آورید زمانی را که اندک بودید و او شما را بسیار گرداند و بنگرید سرانجام مفسدان چگونه بود و این کان طائفت منکم آمنوا بالذی ارسلت بهی و لم يؤمنوا تصبرو حتی یحکم الله بیننا و هو خیر الحاکمین و اگر گروهی از شما به آنچه من به آن فرستاده شده ام ایمان آورده اند و گروهی دیگر ایمان نیاورده اند پس صبر کنید و منتظر بمانید تا خداوند میان ما داوری کند که او بهترین داوران است